قصه ششم دمدمه های غروب بود که مشتی جبار وارد بیل شد بیلی ها در میدانچه پشت خانگی مشتی سفر نشسته بودند دور هم و گپ می زدند کت خدا تا مشتی جبار را دید گفت یا علامت جبار سفر به خیر تو شهر چه خبر بود؟ مشتی جبار گفت: تو شهر خبری نبود، هیچ خبر نبود. مشتی بابا گفت: های پیاده اومدی؟ مشی جبار نشست کنار اسلام و در حالی که کفش‌هایش رو در میآورد و له له میزد گفت: از لب جاده تا اینجا آره. اسلام گفت: کی رسیدی لب جاده؟ مشی جبار گفت: زور تازه گذشته بود کت خدا گفت پس چرا دیر کردی؟ این همه وقت و تو راه بودی؟ مشتی جبار گفت آره وسط راه به یه چیز غریبی برخوردم و معتل شدم پسر مشتی سفر پرسید یه چیز غریب چی بود؟ مشتی جبار گفت والا هر چی فکر کردم چیزی نفهمیدم کت خدا گفت نفهمیدی چطوری نفهمیدی مردها نزدیکتر شدند و حلقه زدند دور مشتی جبار مشتی جبار چوبق اسلام را گرفت و چند پاکی زد و گفت یه چیز گنده بود نفهمیدم چی بود مشتی بابا گفت آخه چه جوری بود مشتی جبار گفت یه چیز گنده مثل یه گاو هرچی زور زدم نتونستم تکونش بدم عبدالله گفت چه جوری بود؟ سر و گوش داشت نداشت چه جوری بود؟ مشری جبار فکر کرد و گفت نفهمیدم چشم و گوش که نداشت کت خدا گفت دست و پا چی؟ مشری جبار گفت دست و پا؟ نه دست و پام نداشت آخه خیلی سنگین بود اسلام گفت چه شکلی بود؟ مشتی جبار دوباره فکر کرد و گفت چجوری بگم مثل گاری که نبود مشی بابا گفت اول که گفتی مثل گاو بود مشتی جبار گفت آره اندازه ی گاف بود یه ذره به فهمی نفهمی از گاف جم و جورتر بود کت خدا گفت تو که گفتی دست و پا نداشت مشی جببار گفت آره بازم میگم دست و پا و چشم و گوش و از این چیزا نداشت اسمایل گفت شبیه کی بود؟ مشری فکر کرد و بعد رفت تو نخ تک تک مردها و خانه ها چند تا صرفه کرد و گفت شبیه هیشکی نبود یه چیز عجیبی بود مثل یه والا نمیدونم چی بگم عبدالله گفت چجوری راه میرفت؟ رفت؟ مشتی گفت راه که نمیرفت، سر و گردن و از این حرفا تو کار نبود، یه چیز عجیبی بود، مثل یه خانه کوچک، مثل خانه بابا علی که دگمه های گنده این و رانبرش باشه اسلام گفت، از چی درست شده بود؟ مشری جبار گفت، نمیدونم حلبی بود، آهن بود و یا یه چیز دیگه اسلام گفت، ماشین قرازه که نبود مشی جبار گفت نه بابا چرخ و اینجور چیزها نداشت خیلی هم سنگین بود کت خدا پرسید کدوم طرفادی دیدیش مشی جبار گفت درست چند قدم بالاتر از شور تو راه پروس اسلام گفت آها حالا دارم میفهمم مردها همه اسلام را نگاه کردند کتخدا خدا گفت چی چی را میفهمی مشت اسلام اسلام گفت هرچی از زیر سر این فروسی هست. حالا اونو از یه جای دزدیدن و انداختن وسط راه مشتی جبار گفت راست میگه کار کار فروشیاست. مردها همه رفتن توی فکر مشتی بابا گفت خب میگین چه کار بکنیم پسر مشتی سفر گفت معلومه راه میفتیم و میریم ببینیم چی هست به درد بخوره یا نه اسماعیل آسمان و اطراف استخر را نگاه کرد و گفت هوا داره تاریخ میشه چیزی به شب نمونده مشی بابا گفت فکر شب رو نکن پدر کت خدا به اسلام گفت تو چی میگی مشت اسلام اسلام گفت بریم آره بریم ببینیم چی هستش کت خدا به پسر مشی سفر گفت مشتی جفر تو میتونی دوتا فانوس برای ما بیاری؟ پسر مشتی سفر بلند شد و گفت، چرا نمیتونم؟ و با عجله رفت. اسلام گفت، آره، بریم ببینیم چی هستش. اگه به درد بخور نبود که ولش میکنیم به امان خدا. مشتی بابا گفت، با چی میریم؟ مشت اسلام. اسلام گفت، معلومه، اسب رو میبندیم به گاری و با گاری راه میفتیم و میریم. کت خدا گفت، خیلی خوب، تا دیر نشده بجنبیم دیگه. مردها بلند شدند های غروب بود ماه رنگ پریده و باد کرده از طرف پروس میآمد بالا شام که خوردند آمدند و جمع شدند لب استخر اسلام اسب را بست به گاری و گاری را آورد زیر بید کنار سنگ سیاه مردشوری اسماعیل و پسر مشتی سفر با دو تا فانوس آمدند پهلوی مردها، فانوس را گذاشتن روی گاری و منتظر شدن. کت خدا گفت، فانوس ها رو روشن کردین که چی؟ مشتی جبار گفت، خودت گفتی کت خدا. کت خدا گفت، هوا روشنه، ماه رو بینی، با دست استخر را نشان داد. مردها برگشتند و ماه را توی استخر تماشا کردند. پسر مشی سفر گفت خودت گفتی که فانوس بیارم مگه نگفتی؟ مشتی جببار گفت فانوس لازمه فانوس نباشه که نمیشه فهمید چی هستش بوز سیاه اسلام از توی پستو ناله کرد صدای جیر ها از باغ اربابی شنیده شد کت خدا گفت تا برسیم شور نفت فانوس ها تموم میشه یه ساعت خوردهای تو را هستیم مشتی بابا به پسر مشی سفر گفت خاموششان کن، شور که رسیدیم روشن میکنیم. مشتی جبار فتیله ها را پایین کشید و فوت کرد. فانوس ها خاموش شد. اسلام که روی کنده درختی نشسته بود با صدای بلند پرسید خب، کیا میان؟ کت گفت، راست میگه، همه که نمیتونن برن. مشتی بابا گفت، من میگم جوون ها برن. اولا که زورشان بیشتره، ثانیا نگه اگه به پروسیا برخوردم برخوردن فوری در میرن. و اگه هم گیر افتادن، میتونن حسابی از پسشون بر بیان. کت خدا گفت، جوونا یعنی کیا؟ مشتی بابا گفت، این کارها دیگه از من و تو گذشته کت خدا. جوون یعنی مشت اسماعیل مشت جبار مشت شفر، عبدالله، مشت اسلام هم که باید بره. اسلام گفت، میخوای بگی که تو نمیای؟ مشتی بابا گفت، آخه من، کت خدا گفت، خجالت داره مشتی بابا، پاشو سوار شو. مشتی بابا بلند شد. رفتن طرف گاری. بیل خاموش بود. تنها زوزه چند سگ از دور شنیده می شد. سفر که سرش را از سوراخ پشت بام آورده بود بالا، سایه مردها را که سوار گاری می شدند، تماشا می کرد و ماه رنگ پریده را که توی استخر، کوچک و بزرگ و کج و معوج می شد. مردها که رفتند، نن خانوم و نن فاطمه پیدایشان شد که از کوچه اول رد شدند و از بیل آمدند بیرون و راه افتادند طرف تپه نبی آقا. شب جمعه بود. پیرزنها زنها می رفتند از نبی آقا برای شفای بیماران خاک بیاورند. صحرا روشن بود. اسب با شتاب جلو میتاخت و مردها را که توی گاری نشسته پاها را توی شکم جمع کرده بودند با خود میبرد. اسلام شلاق را توی محتاب دور سر میچرخاند و با صدای بلند داد میزد: آها، های، های! اسب که زوزه شلاق را میشنید، تندتر میتاخت. اسماعیل کنار به کنار اسلام نشسته بود و آواز میخواند. مردها. به یک دیگر سکیه کرده بودند مشی جبار پانوزهای خاموش را بغل کرده بود کتخدا چپوق پسر مشی سفر را گرفته بود مرتب پروخالی می کرد سراشیبی را چنان می رفتند که گویی توی چاهی سقوط می کنند اسب بزرگتر از همیشه بود اسلام مبهوت صحرا را تماشا می کرد. همه خوشحال بودند غیر از مشتی بابا که دلخور سرش را روی زانو گذاشته بود چرت میزد یا زیر لب میخورید. نرسیده به شور اسلام دهنه اسب را کشید گاری ایستاد. کت خدا گفت رسیدیم اسلام گفت نزدیک شدیم. حمش جبر کدام طرفا دیدیش؟ مشتی جبر گفت بالاتر از اینجا تو همون باری که که میره طرف پروس اسلام گفت پس برم بالاتر مشتی بابا گفت نه اسلام طرف نری نریا تو رو خدا کار دست ما نده مردها خندیدند اسلام شلاق را برد بالا گاری دوباره راه افتاد به شور که رسیدند توی خاموشی افتادند دیگر صدای چرخها و قدمهای اسب شنیده نمی صدای دیگری هم نبود. مشی جبار های خاموش را توی بغل می میفشرد. مشتی بابا آهسته از عبدالله پرسید: میخوان برن کجا؟ اسلام خندید و پسر مشی سفر گفت: میریم خود پروس. مشتی بابا گفت: شوخی نکن. مشی اسلام هیچ وقت این کارو نمی کنه. اسلام گفت: نه ترس مشتی بابا. اگه پروس هم بریم، پروسیا هیچ وقت کاری با تو یکی نداره. مشتی بابا گفت بازم نریم بهتره اینطور نیست که خدا اسلام خندید گاری به راه باریکه پروس که رسید سه نفر پروسی سوار اسب پیدا شدند و آمدند از جلوی گاری رد شدند و مثل برق زدند به بیراهه مشتی بابا خودش را پشت سر دیگران قایم کرد اسلام گاری را نگه داشت و یلیها خاموش سه پروسی را که به طرف میشو میتاختند تماشا کردند مشتی بابا گفت نگفتم نگفتم اسلام کت خدا گفت کاری که با ما نداشتن اسلام خندید پسر مشی سفر گفت بریم مشت اسلام گاری راه افتاد و اسلام گفت مشت هر جا که رسیدیم خبرمان بکن مشتی جبار گفت مثل این همین دوروبرها بود اسلام گاری را نگه داشت و یلیها دوروبرشان را نگاه کردند کد خدا گفت: "کوش." مسیح جبار گفت: "بریم پایین، بریم پایین." مردها همه پیاده شدند. پسر مسیح سفر یکی از ها را روشن کرد و داد دست مسیح جبار و فانوس خاموش را خودش برداشت. دست جمعی دوش به دوش هم راه افتادند. اسماعیل گفت: "میریم کجا؟ اگه جلوتر میریم، بهتر دوباره سوار گاری بشیم." مسیح جبار ایستاد و بهت زده اطرافش را نگاه کرد و گفت همین طرف ها بود پسر مشی سفر گفت عوضی نیمدیم؟ مشی جبار گفت نه عوضی نیمدیم همین و برا بود هانوس را بالا گرفت و خم شد و شروع کرد زمین را تماشا کردن پسر مشی سفر زد زیر خنده اسلام هم خندید کت خدا گفت دنبال چی میگردی مستی جبار؟ نیگفتی که خیلی گندس و نمیشه دکونش داد. مردها همه خندیدند. مستی جبار جواب نداد. همانطور خمیده روی زمین دنبال چیز ناپیدایی میگشت. نن خانوم و نن فاطمه نشسته بودن روی سکوی درگاهی نبی آقا منتظر بودند که سر و صدا و رفت آمدهای داخل زیارتگاه تمام شود بروند تو بیل زیر پای آنها و با غربابی روبرویشان بود و استخر بزرگ از وسط خانه ها و زیر محتاب رنگ پریده مثل چشم ای آسمان را نگاه می کرد سر و صدا که کمتر شد نن خانوم بلند شد و در زیارتگاه را باز کرد و رفت توی تاریکی. با احتیاط شم روشن کرد. موشها که روشنایی شم را دیدند، هجوم بردن طرف زریح و از های صندوق رفتند تو. نن فاطمه که ایستاده بود جلوه در، با صدای آرامی گفت، یا الله، یا حضرت علی، یا محمد یا حسن یا حسین السلام علیک یا الله یا حضرت یا علی یا محمد یا حسن یا حسین اومدیم خاک شفا ببریم یا حضرت یا امام یا علی یا الله مریضهای بیل رو شفا بده خودت اونها رو شفا بده